بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد شو هي شوفيسكم الجملة شبهات مرجئة شنينك ميان قضوا بالقرآن قفتة الذين آمنوا وعملوا صالحات زيادة بالقرآن لرسة الذين آمنوا وعملوا صالحات ونهايك إيمان وردن بعمل صالحات جميلة قد أشجتيه بهشته خب در این آیه ما این چینین که خداوند واب عدف گفت ایمان اونایی که ایمان آورد و عمل صالح انجام دادن عمل صالح انجام دادن این واب عدفه واب, واب دلالت مغایرت داره یعنی عمل چیزی دیگه هست ایمان چیزی دیگه هست پس در نتیجه عمل جز ایمان نیست اگر ایمان جزء اگر عمل جزء ایمان بود خدا هم میگفت یا ای الذين آمنوا کافی بود یا میگفت الذين آمنوا دیگه لازم نبود که عمل صالحات دیگه چرا راورد پس چون وقایع اومده و دلیلی سیاق اومده پس عمل صالح چیز دیگه هست؟ ایمان چیز دیگه است حالا با جواب بده جواب چطور بدونی از لغت عربی و از اصول فقه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 تلازم نباشه یعنی بین آنها ربطی نباشه با هم یعنی آنها با هم ربطی نداشته باشن مثل خداوند میگه خلق السماوات والارض. خلق السماوات والارض. آیا تلازم بین آسمان و زمین؟ آسمان و زمین آسمان و زمین خلق آخر قدسن آفری این واب دلیل بر اینه که زمین و از آسمان یا آسمان فکمتی از زمین خیر. هیچ تلازم بین اینها نیست این یک خلقتیه این یک خلقتیه درسته این بده اینجا ما قبول داریم این با مقایرت این چیز دیگه این چیز دیگه هست. لیکن در غیر این وجه ما قبول نداریم مثلا مثال دوم که دلالت بر مغایرت نیست یعنی دلایل در این می‌داره که هیچ مقایرتی بین اونها نیست بلکه جزئی از دیگری جزئی از دیگری یعنی معطوف معطوف جزئی از معطوف علیه حالا این زیاده که این الذين امنوا و عملوا الصالحات جزءا همینه مثلا در قرآن داریم من کان عدوا لله و ملائکته من کان عدم لله و ملائکت دی و رسول و جبریل و امیتا درسته خب شما شمای مرجع بدبخت شمایی که میگید عمل جزی از ایمان نیست و عمل چیزی دیگه هست ایمان نیست عمل چیزی دیگه هست ایمان چیزی دیگه هست چیز آیا جبریل غیر از ملائکه هست خداوند میگه من کان عدوان لله و ملائکته و رسوله و جبریل و میکال آیا میکایل غیرت ملائکه هست؟ این باب دلیل بر این است که اینها جبریل و میکال غیرت پرشتگانند اون کسانی که پیام اسی خودمان بحث می آوردن یا مثال بازحتت خداوند در قرآن اگه حافظو علی الصلاوات والصلاة الوسطى الصلاه خب، نماز را برپا داری، و نماز عصر آیا نماز عصر غیر از نمازهای فرد دیگه هست اینجا باب دلالت مقایرت داره یا نداره نداره مقایرت نیست بلکه نماز عصر جزئی از کل نمازهای مفروض فرد ما در بچه اول گفتیم در بابعت گفتیم که شاید بینشون تلازمی نباشه که دلالت بر مغایرت داره دی در وجه دوم گفتیم یه چیزی جز دیگری هست معتوف جزی از معطوف علیهه که لازمه یه مغایرت نیست در این جمله در این سیاقی که این چنین نماوی باشه وجیه دوم چنینه که بازم مغایرت بینشون نیست. مغایرت بینشون نباشه دو چیز. بینشون مثلا بین معطوف و معطوف علیه تلازم باشه. و هم رب داشته باشن. نگاه بکنید در مثال اول گفتیم بین آنها ربیده باشه، قسطت الموات و الارض و السماء و تمام چیزی این چیزیه. حالا اگه رب داشته باشه، قسمت دوم جزیی از دیگری باشه. قسمت دوم رب داشت باشاً يجي لازم ايدي جاريها مثل ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق اه لا كذلك يجعل حق رب باطل ببشنا باطل رب بيار حق رب مختي ببشنا ايه كثيرا حق رب كاردنا كارده كثيرا حق رب كارده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 همون تلبیس حق و الواتل. لیکن وجود با هم این یک شیوه هست این شیوه دیگری لیکن بینیشون تلازم وجه چارم وجه چارم در بابعه باز هست. دو چیز یه چیزی هست دو چیز، یه چیزی هست. معده، معده، یه چیزه معدوم معدومه چیزی هست اینجا غیر ممکنه غیر ممکنه. مثل دو وجه قبل غیر ممکنه که مغایرت داشته باشد؟ غیر ممکنه مغایرت داشته باشد. اگر بگی مغایرت دارن کوف گفتی چرا کفره مثلا غافر زم و قابل و تو غافر آدم کیه پروردگار قابل تو کیه بازم پروردگار شمایی که میدید وابعه دلالت بر مغایرت داره بیاره به ما توضیح بدید این که کدوم خداست این کدوم خداست خلاصه بحثی میشینگا خلاصه بحثی این که ما باعث در جاهای وقتی که بین دو تیسته نباشه قبول داریم که دلالت مغایرت داشته باشه لیکن در وجوه دیگری قبول نداریم و لغت عربی هم شاهد و گواه هست بلی مثله که در خیلی از جاها در سه بین چیزها مغایرتی با با بیاد بین جدا چیز مغایرت نمیفته, نمیفته با چیز با هم فرقی نمی کنه و این بحث بحث انده امر امر و صالحات چه دلیل و مدرکی دارید که مثل بچه اول بینشون تلازم نیست دلیل بیاری که بینشت الازم نیست. مثل آسمان و زمین. واضح هست؟ شبه چه رو. لغت. لغت باید یاد بگیرید. امام ابن تیمیه در کتاب اقتدار سیات المسلح که میگه در حد مسلمان واجبه که لغت عربی یا یاد بگیره. چرا؟ چون خداوند ما را دستور داده به تدبر قرآن یا دب آیات قرآن کما دستور داده قرآن را یاد بگیریم و بفهمیم و درک کنیم و تدبور بکنیم پس چون تو دبور حاصل نمیشه مگر با لغت عربی پس لغت عربی واجب میشه همونطور که بوضوع واجب برای نماز خوندن لغت عربی هم برای تدبر قرآن واجب این اهمیت لغت عربیه تنگاهیم سخت است لیکن وقتی که کنار هم بذارید مرتب بکنید آسوم میشه شبه چهارا شبه بعدی بله شبه بعدی جواب خب ما گفتیم ما باید شما که اثقاق میکنید این او ازه شما باید دلیل بیارید گفتیم بهشون تو که باید شما دلیل بیارید که این دوتا بینشون تلازم نیست چون در یک وجه اگر تلازم نباشه πάیرست بینشون Pre چه مدرکی هست بر این که بین این دوتا تلازم نیست چه دلیل هست که بین این دوتا تلازم نیست خصوصا خصوصا ما اینکه مثلا ما عدله داریم عدله که خب نه اونا که برای خودشون ادله همین تا همینجا خلاصش کردن یعنی تو تو همین در همین بحث خلاصش کردن یعنی برای خودشون حالا ادلهشون احادیثش هم خواهد بود حالا این حدیث چهارم رو گوش بدید این ادلهشون یک از ادلهشون خواهد بود بر این که عمل چیزی دیگه هست ایمان چیزی دیگه هست و ویدیشت ترازم بیسیم این دلیل شبهی چورو بیشون که دلیلی هست برای بسیل ای قرد. چنین که در حدیث داریم، حدیث ابو لیست سمرقندي، ابو لیست سمرقندي، از بره روات میکنه که بی که جاء وفد ثقیف ایلی رسول الله صلی الله علیه و سلیم، وفد ثقیف ایلی رسول الله، فقالوا، یا رسول الله، الیمان یزید و یا سؤال فکر می‌کرد سؤال ایمان یادی دویانه ایمان کم مزیاد میشه؟ فرمودن نه ایمان مکمل و فی القل ایمان در قلب کامله زیادت رو کفر و نقصان و شرک زیادت و کفر و نقصان و شرک ایمان کم زیاد نمیشه ایمان یکی کرد پس در این عمل جز ایمان نیست. ایمان یک چیز هست در قلب اگر یک تیکش بری همه چیز همه همش میره حالا این شوفهش جوابش بدید سماكه الله مون گفتید در بحث اینکه عمل تلازم داره با ایمان و عمل جزئی از ایمان که ادله مون را گفتید ملی بحث در بحث کماشون زیاد شدن ایمان علی ایمان و بقا و تبعیون شعبه در مباحث ادله قران و سنت گفتید حالا لیکن شبهات اینارو پاسخ بدید اولا این حدیث موضوعه چرا موضوع هم از نهاد امت معلوله هم از نهاد اصلاف اما از نهاد اصلاف راویان حدیث از ابو مطیع تا ابو اللیت سمرقندی همشون مجهولن ست رأی بکنم بچه از ابو مطيع راوی این حدیث طاب لیست مرکندی که تبریر نواده کنه. اما ابو مطيع دومان. اما ابو مطيع یک از رأیان حدیث که حکم. الحکم ابن عبدالله ابن مسلمه الحکم ابن عبدالله ابن مسلمه. خیلی از علماء براز هر ضعیفشن او را ضعیف میدونن حالا غیر حالا از این که ضعیف را ببینیم از جمله امام احمد ابن عدی یحیاب بن معین دارا قطنی بخاری ابو داود نسایی ابن حبان و ابو حاتم راضی و غیر از اونها زیاد تا جایی که ابو حاتم راضی چینین میبوید كان أبو مضيع مرجئا كذابا جرح در حذولات فجرح در ذات درغوست فمرجعي هم جرح مفسر يا مفسر نيس. جرح مفسر جرح مفسر بر حر تأذيل راجح مقدم بر تمامي ترجحات سبما در اسناد شخصی هست به اسم ابو المهزم ابو المهزم وزار نار اسمش یزید ابن سفیان است سعد حجاج و نسائی گفتن متروک تا جایی که امام شعبه میگه ان هذا رجل يضع الحديث ان هذا الرجل يضع الحديث حدیث دروب برس دوامی بنده از حادثه دروغین میگه میگه توجهی که امام شوابه میگه میگه لو اعطیتموه و فليس لحدت کن سبعین حدیثا اگر یک کولاکی بیش بدی کولاکای بیش بدی اعطیت حدیث لیس میگه انا این خلاصه بحثی که لاز امام ابن الجوزی در موضوعات می رجل زنباسا فیتی و همچینی سیوتی در لعال الموضوعه جلده یک صفحه چلیه اکبر تنزیح و شریعه تعلیف کنانی جلده یک صفحه نو شاید یک شخصی بیاد یک فیلسوفی بیاد بکرد ها شما محدثین یک شخص بیاد افتاد تحرید و باید میکنه شما هم نمیدونید باجا عالمی حدثی ره دینه یک شخصی بدونن که یک تا روایت درو میگه دیگه حدیث ش قبل قبول نمیکردن این اشخاص مطروبند اام ن صحی و شابت از ترکش دادن حجرش دادن کسی باش ننشینه چطور تو به و محدسی میزنی که حدیث رو نمیتونن چطور روایت بکنند بکنن و نمیدونن همه جووری کردن از کجا معلوم که صحیح باایی نشده نشدن نخره اینقدر حریث بودن این قدر قد درقط قد داشتن که نمیذاشتن که کتی بیاد کسی که مجروح ناقب بکنه نمیدوری اما از لحاظ در مطم مثل حدیث مخالف و صریح قرآن و صریح سنت این وجه اول وجه دوم اینکه در همتو که این حدیث اومده ایمان یک جمله هست یک تیکش بره همش میره گفته که مخالفت با عقض و همچنین با نصوص, نصوص صریح سنت از جب در حادیتی که اومده لا یکا الرجل الا حبت خربن من ایمان تا جایی که مثلا یک شخص به اندازه یک ذره گندم از ایمان در قلبش باقی نمیمونه این قد شخص بلان میکنه که به اندازه یک ذره ایمان چطورکه این شخص ایمانش کم شده؟ اینجا میگیم اینجا در این حدیث داریم که ایمان کم نمیشه یکی که از در قلب در اونجا داریم که نه ایمان کم میشه تا جایی که یک ذره میره. نمیشه اصلا توفیق داد بین این حدیث با اون احادیثی که ما داشتیم. و به از آخر صریح سریه خصوصا کسی هم ادلهای در سنت داریم یک شخص مؤمن میتونه بین ایمان و بین شعبه های از کفر و نفاق جنب میتونه شواغه های از نساق داشته باشه اذا حدثك كذب واذا واحده اخلف او يا مطلقه درو گفتن منافق بودنه ایمان از بین میره با یک عمل بخیر پس منافق داره با حادثه میکنه دار منافق داره با خود قران زيادة زیادی من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من ایمان من رأى ممكن منكم منكر فليغيره بيده فأخر مجوه ذلك أضعف إيمان إيمان زيفك آية المنافقة ثلاث إذا حدث كذب آخر أربعة من كمن من كنا فيه كان منافقا خالصا رأحاد الزياد الزياد حدث أبو جهل أبو زر. أبو زار أبو زار أبداع الجاهلية وأنا بين ظهر ياقوت أبو زار إنك أبغضك جاهلية نقص إيمانك سباب المسلمي فسوب وقتاله كفر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 بحث جنس عمل میاد آیا الوانی مرجعی هست یا نه آیا عمل را جز ایمان نمیدونه چه خلافی هست بین مرجعه و مرجعه فقه و؟, و چرا این چیز تهمتی و زدن دادن حالا این همه جزء تحقیقاتی هست که ما میخوام داشته باشین زمن همین بحثشون گفتی که این بحث میخوام کامل بشه حالا قبل از اینکه بخوام به این مباحث سوی حاشیه داریم، روی اطل مثلا الله هرچند که ما گفتیم که شبهات دیگری هم هست که خواهد اومد حالا تو اینجایی که خوندیم اختلافی که الان این مرجعه داشته الان مرجعه فقه ها عرب خصوص چون اولین کسانی که اومدن بحث شبهه تموزیاد نشدن ایمان و مدرح کردن مرجعه فقه ها بودن مسابقه سنی ف و حماد خب الا این دو شخصی که هستند در صاحب مذهب هستند ها هم مذهبشون در اعتقاد در ایمان از این دو نفر گرفتن آیا اختلاف بین مرجعه ها لفظی هست در عاقبت یکیه یعنی فقط در لفظ با هم اختلاف دارند معال صحبتها یکییاند یا اینکه اختلافشون چه میگی اختلاف لفظه یا معنوی در اصل با هم فرق دارند یا فقط در لفظه در ظاهر مرجهه فقا مین همل جزء ایمان نیست ایمان ما ووبد فرق ندارم ولا خلاف جوهري ولا خلاف ظاهري؟ موركيان بعهد السنة بعهد السنة السنة، اختلاف إختلاف موجز؟ فوتها بعهد السنة إختلافه شون جوهري ولا ظاهري؟ لذي نعم؟ نعم لا معني. معني. لا مرهی پخه گفتن ایمان چیه؟ خموش ها برای این الان این مشکل که هست اینجا میگن که ایمان شما و شما مثل رسول الله مثل و بقر عمر بیانی تو ایمان نداره حال چند که در آخر در آخر گفتم که اون عمل شاید الا انسان در مقابل توبیخ بشه ولی که کار به ایمان نداره ایمان ثابته الا میاد در نزد اختلاف در نبض علماء اون چیزی که امام تهاوی و ابن عبد ربه حنفی به که این اختلاف ظاهری لیکن علامه البانی این همچنین شیخ عبدالرزاق ابن عبد الحسین بدر و همشینی شیخ ابن عثیمین و مشایخ دیگر بریم این باورن برای این که اختلاف بین موجعی فقه ها و بین اهل سنت اختلاف محنوی است، جوهری مشکل در اصل اتقاد است مشکل در اصل اتقاد است حالا وجوهش زیاده اونایی که علامتا استدلال هایی کردن که ایمان ای یکی که هست اگه یکیشو بر همش میره ما قبول نداری مثلا بلکه ایمان گفت یکم زیاد میشه با سریش قران مخالفت است داره این گفته کجا اختلاف لازم اختلاف معنوی این میگه مثلا ایمان کمو زیاد نمیشه به حنفیه میگه ایمان کمو زیاد نمیشه یک دیگه هست ما در قران داریم ایتولی ات علی آیاتو زادتا ایمانا خب پس بحث در خود ایمان است در اصل خود ایمان در اصل خود ایمان به کمو زیاد میشه ما اختلاف برد اهل با مرجی فقه اختلاف داره. اونا میگن ایمان یکی هست. ایمان ما با با او و و دیگر اصلاف فرقی نداره. ما میگیم نه فرق داره. چون ایمان کموزیات میشه. و قرآن و سنتم بر همین گواه میدن که ایمان کموزیات میشه. <تصفح> نه. نه. مثلا خود مرجی مسائل هست کسی خود تصورشون در خود نماز ببینید نماز سریع می خونن یعنی اهمیتی ند به اخراتشون نمیدن نمازشون اهمیت اهمیته خود این اعتقاد سبب شده که فقط به ظاهر قضیه نگاه بکنه نهان تفکر داشته باشن در نمازشون در طاعاتشون در عباداتشون این خودش این بحث ایمان کم زیاد نشدن ایمان سبب شده که در اعمالشون نلفویس بکنه این خود بگه روزای عرفی هاشون فلان از خود خودشون تفکر و فلان ما این مسئله یه بود یعنی یعنی یک شخص من مثل منو مثل من شما آیا مثلا کسی از ما اجازه میده به خودش که بگه که من مثل او رفتار از لحاظ ایمان قوت قلب حالا هم همون قوت قلبی که ما میذاریم ده می اسمش ایمان ما هیچ وقت نمیتونیم خودش خود ما میگیم که هزار بار ایمان من ناقصه چیزی هست که ما فطرتن میدونیم لازم نیست که ایمان تلقیم بکنه. چطوره که شما میگین ایمان ما و او با هم یکیه. نصوص صحابه زیاده. یه از دلت صحابه کی میگفتن عمر بهتر از ما بوده. او بهتر از ما بوده. نصوص اصحاب زیاده. اصحاب خیلی ها. میگفتن که چی؟ میگفتن که؟ که او بکت از ما بهتره. و تفاظر بزنستم بین خودشون یکی رو بر دیگری برتر میزن ولی مرجع پخوانه همه رو یکسام میدونن از ایمان همین یکی هم. اون مشروب کار رو اون نمیدونم فلان کار همین چیز به هم میخواد ولی ما همین گفتیم اینا ها روبرو بشن با خوارج مشکل اینجا روبرو بشن با خوارج اونا میگن اونا میگن هر فاسقی خاخره این آمدن در ارزادش هر فاسقی مومده و کامل ایمان علسانت سنت بسرد با کافر نمیشه ایمانش کم میشه شما که میگین ایمان همینطور زیاده یکی کم نمیشه ما بگیدن باید کم میشه علسانت اینجا هسته ما گفتیم همونطور که اختلافمون با خوارج جوهریه اختلاف امون با هم جوهریه در ذات در معنی با هم فرق داریه Is رعی رعی و حتی اصل در مذهبشون رأیه. یعنی اینا دو مدرسه رأی مقدم. در نزدشون همه چی سیاست است. همینه که ابن حلد شدیدن باشون مخالفت میگه اصل اساس مذهبشون رأی اصل اساس مذهبشون رأی است. عثمان کله گفته میشه که کل احادیث که دارم مذهب حات، هنی امام اعظم روایت کرده کل احادیث سه چهل حدیثه، سه چهودتاش که ضعیفه، قطعا بقیه تیجش بین حسن و ضعیف. هر چند که در عهده سهل نمیاد، بین حسن و ضعیف. من تقدیم که هست یعنی تقدیم من محدفینه، مقاری به عدالتش نداریم، ولی هر چند که دست به زب در نظر ما مزاییه، زب نداره. و در همین روایتاش تضعیف میشه حالا خود امام ولی که از لحاظ مذهب بنیه و اساسش روی رعیه روی فکره و این اساس می‌بینید خود ما نصوصیی توری داریم یه چیزی میگن اینها چیزی دیگری میگن ما ما اینو میخواه بگیم بین نصوص و بین فکری اینها تضاده با همجور در نمیاده خدا از ما میخواد ایمان زیاد بکنیم، تحویت بکنیم میاد عدل چطور ایمان رو میشه تحویت کرد؟ اینا میاد نه ایمان نمیشه تحویت ایمان رو یه چیزی هست، در قلب ایمان رو زیاد نمیشه غیر از اینکه مردمش روی تناقضه چطور میشه که یک شخص ایمانش کامل باشه و در صورت مثلا اشتباه میگه کسی مشروف برد تناقض؟ اینگه یک شخص. ایمانش کاملا، ولی چون مشروب کرده عذاب میگیده. مصطحق و وقوبت باشه. آن چطوره که ایمان کامله. سد در سد پر فیکس. بیکن. مستحق و وقوبت باشه. این شخص کامل ایمان. میکنه. این شخص مؤمنه کبید. یعنی با فکر و عقل و غیر از اینکه با قرآن و سنت نمی کنه. با فکر و عقل ما هم الو مسائلی که میگن از جمله این که عقوبت روی خود عمل واقع میشه و اگر قرار باشه عقوبت روی خود عمل واقع بشه یک شخصی از ما گناهانی کرد و این الان این توبیخ شد گناه در مقابل گناه من مشروف خوردم فلان خوردن توبیخ شدم حالا وارد بهش شدم بهش برای خودش درجه داره فردوس داری فلان داری منو کجا بذارم اگر سوار باشه ایمان کم زیاد نباشه، جام کجای بهش باشه دیگه طبقه ها داره این نصوص رو چی کار بکنیم که فردوس برای اینجای بهشته و فلان و فلان و درجات داره واسه خودش این درجات رو چی کار بکنیم خف خاتمه این بحث چینی که لاچکن که خیلی یعنی معال این گروه چینی که گروهی از مراجع چینی گفتن که کفر این حرف سبب شده که بگن کفر یک سفر داره کفر حالا این شخص شخصی که مؤمن شده الا هم نشون کام زیاد نمیشه حالا چطور میشه که این شخص الا کافر بشه گفتن که ردود بچه سبون رده بر اونها گفتن که کفر یک سفر داره و اونم عدب تصدیح داره یک شخصی که من خدا را باور ندارم و اگر شرم بگه یک کسی کافره خاطر که تصدیق نداشته اون شخص آیا ما خودم در شرم و یک شخصی بیا قرآن را کنه کافر هست یا نه؟ شکار بکنیم بایچین این آیات که خداوند می لا ترسد رو خوز که می یکقدر کسا تو بعد ایمانی کن ما نرسا بیکنند نگاه بکنید بعد از جنگ, جنگ فانه اومدند گفته نگاه بکنید مسلمان ها شکمشون پر شده شکم گنده شدند که با مسلمان ها سا غنیمت می کنند چی تو طرف از نیاری که کافر شدید بعد از ایمانتان بعد از ایمانتان بعد از اسلامتان کافر شدید نیچید. کفر اکبر حالا چی بردید بیاد به قرآن کسی استهزا بکنه مسخره بکنه پس ما میدونیم که غیر علم تحصیح این نگه تم من خدا را باور ندارم بیاد به مسخره بکنه بیاد به رسول ما بکنه بیاد به قرآن مسخره بکنه بیاد یه چیزی از دین مثلا دیگه نگاه بکن. نگاه بخون ریشاشو نگاه بخون حالا دیرشون خوشه ریش گذاشتن مسرمون شدن بسید خودشون یا پیناهاناشو نگاه کن تو آب رفته مثلا به دین مثلا به سنت مصطفی دختاره هم سنت را آیت می کنن به سنت مصطفی کفر ازور نه تذاری بیتا عوض نمیخواد بیاری شرع شرع این اسلامو داریم دیلی سوال میبرید شرع متعهد شرع برگزیده یا صرف خدا خب این سفت دادن کفر مولا حرفشون که بایدی گفته ایمان که مزیاد نشه دیگه کفر رو مدنی چیزی تعریف کردن گفتن که کفر عدم تسید ما کفر استهدا داریم کفر جحود و استکبار داریم و جه به هم رجح ترین وستیقنات ها انفسه بس شکر بکل تصدیق نداشت میگه وستیقنات ها انفسه تصدیق نداشت خب در رد مرجعه على الخصوص اینه که علماء اهل سنت و با سختی و با الفاظ جرح شدید اونا رو مجروف کردن اوه حنیبه چرا مجروحه؟ بادر همین حرفش اهمی جرحات از اهل سنت اومدن مرجعن رو با الفاظ یاد کردن اونا تاجهیت اونا مثلا امام اوزای چنین میگه میگه لفتنه المرجع اشد دو على من فتح ازارقه فتنه مرجعه بر امت من از فتنی از اون زندگی خان، از اونهای که خدا را باور ندارد فتن از فتنی اونها بدتره چرا؟ مثلا شما بایدون در نظر بگیرید یک شخص گابرست برای خودش تزواج داره طلاق داره نمیدونم مفرمات داره افتی داره وقتی که من گفتم ایمان کما زیاد نمیشه یعنی چی باید دل پاک باشه هر کاری دردت خواست میکن. اما آنه حرف همین دیگه. بقیدر همین مشروع ارجا در اومد زیاده. در همین کچه و دیگه. گفتم بهتون. سلی با گذاشتی رو گردنگی گردنمش روشیده یا رو پیرانش عادی بهش میگه بایدن. سلی کفرا امام ابو حنفی ها یه چیز میگن در کتابهای فرم. میگن یکی از کفرهایی که بخشیده نمیشه روز پوشیدن سلیب یک شخصی سلیب بپوشه یا روی پیراهنش باشه کفر اکبر محجزه کرده والله نبی جل چطور جنبندگی بکنین بین این کارشون و بین این حرفاشون هست ولی خب ما اینو میگیم یک شخصی یعنی در جامعه خودمون وقتی که می میگه دلپاک باشه دیگه حرام باشه عادیه مشروب خوردن زنا کردن میگه دل پاک باشه آیا دل پاک بودن به درد میخواد؟ این فتنه ای هست از بده به خاطر همینه که بگن فتنه اینها اینایی که میدن ایمان و زیاد نمیشه مجتمعات اسلامی را در زنا و فحشا و منکرات و مشروبات میگذارند و قرار میدهند آقابتی این امت بدتر از ام امت پایبنده ولی مشرک عاقبتش بسته فساد و افساد در روی زنینه حچ که شرف شنااعتش بتره لیکن شرک و ما کو معذبیحت ن بهته را ش رو خخر میکنه که رسول بیاد لیکن بحث زنا و فحشا و اینها دیگه برای امت مسلمان عض درشته که بیاقا ما عوض داشتم و فلان داشتم و حالا بیاد هر کاری دلش خواست انجام بده خب از جملات امام موضوعی چیلیم داریم لیسه علی الاسلام شیعون امرو علیکم ارجا بر اسلام چیزی ضررش و زیانش بیشتر از ارجا نیست اینم این گفته هم روایت یحیی بن نکدیر خیلی از این خیلی از این چرا این میتابعی با این ها برخور کردن خاطر حاقبت این حرفی که سبب اینشین این گمراهی هایی میشه من گفتم هر چند که اومدن بین هر پاشون جمعی بکنن لیکن خب این چاله هایی که به وجود اومدتر در مذهبشون پنجمین وش در رد اونها این که اونها اومدن ایمان را تعریفش تعریف لفظی کردن گفتن که در لفظ در بغت تعریف لغویش ایمان این تسریف خلافت ما شده اگر قبل باشه که هر شخصی از ما بیاد بگه نمازم لغویه فلانم لغویه سیامم لغویه و دیگه چی برای از ما این جنایت در حق نصوص قرآن و سنت که ما بیام الفاظ شرعی را با لغت شرحش بدیم یا با لغت تعریفش بکنیم لغوی بدیم. حتی که ما گفتیم در لغت ایمان به هیچ باش اصدیق تنها نیست نیستن بلکه شامل تن و از پس خلاصه بحثی اینه که با این وجوهی گفته شد با این شدتی که اهل سنت داشتن اختلاف بین اهل سنت و بین موجعی فقه ها میشه اختلاف جوهری یعنی در خود اصل مذهب خاطر تعارض حرفشون با خود قرآن و با خود سنت نبوی و حریح اقوال و به این تزار دیگه بشمده این اختلاف اختلاف معنوي نبی معنوي این اختلاف، اختلاف این حالیت این مثلا مین رایت دیگه مین رایت دیگه این تحاومی براب و در آخرش میگه که اختلاف معنوی یعنی آخر آخرش میاد میگه که چون عاقبت کار را قبول دارن که انسان طوبی میشه به خاطر عملش بس عبرت به آخرت با عبرت به عاقبت کافی همین بس با زندت متفقن این کافی نیست ما گفتیم این کافی نیست نه نه قول اونا را تایی که تعویل بکنه و تعیب که بگه که هیچ فرقی با احل سنت نداره بگه فرق و بونه بین این تا گفته قول اهل سنت و قول مرتعی باقا زیاد و شدیده خب دست از خلم برداشتی توقع ها نداشتی اینچین این بحثی بشه حالا اگر حنت میگوید داره اینجا کلمون کلم میکنم خب سر امرت جدا میکن ما متاسفانه به غیرتمون نمی در نمیپره وقتی که درباره خدا این چنین حرفایی زده میشه در مقابل در مقابل قرآن این چنین حرفایی زده میشه ولی اگه اگر امام بگیم فلان امام اشتباه کرده او دنیا به قیامت دار میشه زیر میشه دنیا که چرا شما آمدید نقد کردید دانما انتقاد موظفه تل غیرت ممکن است خود ایمان داریم نسبت به خود خداوند در نصوص قرآن داریم اگر این نبودن هیچ وقت ما به خودمون اجازه نمیدادیم که بخواهم کسی را نفضو کنم یا زیر سوال ببریم خب کسی سآل در همین زمینه در همین راستا هم نه عقیده گفتیم که وقتی عوض شد که خوارش اومده و مناظره پیش اومد ما می‌بینیم که همچنان مناظرات هست و اشخاصی میان که تحت تأثیر فکر مخالفین این قرار بگیره محمد رشید رضا الالبانی میگه عقیه سلف رو من از طریق محمد رشید رضا نقلستم من سلفیت را از اون یشرق ده خود محمد رشید رضا میبینیم که در کتاب تفسیرش منار میاد گفته محمد عبدالشیکش رو ترجیح میده در اینکه سجالی نیست یا جری مجیدی نیست و میاد خیلی از گفته های موسدی رو ترجیح میده و خیلی از نصوص قرآن و تعویل می تعبیرهای تعویل و جهنیه و گفتیم ای و علت به این برمی گرده که انسان با یک قومی در دفته و اهلیتش نداشته باشه متاسفانه این چیزی هست یعنی خیلی از اشخاص میرن هنوز خامن هیچی نفرمیدن کتاب های سروش میخونن بازرگان میخونن آخر آخرش به ما میاد میگه من سونی می هستم حالا این سنیتش کلان حدیث بهش میبینید بیگه آحاد قرآن بهش میبینید نه بطن داره باید به بطن نگاه بکنی هرچی در واسه بطن میگذاره شکم میذاره این فکر پیش میاد صحابه میشن مجروح دین اسلام میشه هیچ دین اسلام فرقی به بودایی و نمیدونم مسیحی و نصرانی و نمیدونم یهودی و مسلمان نمیذاره همهشون پیش یک سال و هر کاری هم میکنه. بودن ما. داخل تصیری رفتن بدون ورثیه بدون شناختونه گفته شدن این چیزی آثار منطقی بر ما گذاشته و همچنان داره حالا خدا نمی‌خواد که دانشجو دا هستن، کنه حالا این چیزا خیلی برای شما مهمه شما باید بدونی مشکلات هست وقتی که ما در مدرسه می‌خونیم دست میگن قدرت و فلانه و خود به خود خیلی از دوستان ازشون سوال میکنیم کوچه و خیابون خدا کجاست همه جا همه جا تا جایی که میگن حساس. ثبت معذرت خداست خب این فکر ها به خاطر خامی واسه به خاطر اینکه ما بخت نشدیم به خاطر اینکه ما سنتو خوب نخوندیم چن صولی که های مقدس به بخاری ترجمه شده بخاری رو کسی نمیشناسه مسلم رو کسی نمیشناسه حالا چه برسه به عقیده احل سنت که در کتاب ها نوشته شده در کتاب فقهی به محجا و کتاب شریعی آجوری و کتاب ایوانه ای ابن بحث از مهمترین کتاب های مستند اعتقادات خب برور فردنید ویچید هسته سفانه سفانه سفانه